ازیزان آیا تا حالا نگران فردا شدین؟ هفته بعد چی؟ آیا نگران سال آینده شدین؟ خب من نگران میشم و مطمئنم که شما هم نگران میشین. اما تعالیم عیسی مسیح به ما میگه که خدا وعده میده نیازهای فرزندانش رو فراهم کنه سلام و به درسی دیگه ای در ادامه مطالعه تعالیم ایسا در دانشگرده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین حالا بیاد. به معلممون ملحق بشیم و درباره باری های پادشاهی که باید به عنوان شاگردان ایسای مسیح داشته باشیم، یاد بگیریم. بنابراین به شما میگویم از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ مرغان هوا را نظر کنید که نه کارند و نه درابند. و نه در انبارها ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما آنها را میپروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستی؟ و کیست از شما که به تفکر بتواند زراعی بر قامت خدفصایت و برای لباس چرا می اندیشی؟ در سوسنهای چمن تعمل کنید چگونه نمو می کنند؟ نه مهنت میکشند و نه می ریسند؟ به شما می گویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور رفکنده می شود چونین به پوشاند؟ ای کم ایمانان آیا نه شما را از طریق اولا؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم؟ زیرا که در طلب جمعی این چیزها امتها می باشند. اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید، لکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا نباشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد داشت. بدی امروز برای امروز کافی است. آیات 25 الی 34 از متا باب 6 رو براتون خوندم که در اواسط نیمه دوم این باب نوشته شده. در قسمت اول متا باب 6 اونجا که عیسی به شاگردان خود میگه به بالا نگاه کنند او سه زابطه روحانی رو تعلیم میده که دیدگاهی سازمان یافته و منظم نسبت به بالا به ما نشون میده این سه زابطه هدیه دادن که قسمت مهم از زندگی شاگرد مسیح را تشکیل میدهد و ضوابط دعا و روزه گرفتن هستند که هر سه این ضوابط به ما میگویند که چگونه به بالا نگاه کنیم حال که به ما گفته است به بالا و به اطراف خود نگاه کنیم در بزرگترین قسمت متا باب پنج جایی که به ما گفته چگونه خوشاب ها رو در روابط خود با دیگران به کار ببندیم سپس در باب شش او میگه که شما وقتی به اطراف خود نگاه میکنید مادامی که به بالا نگاه نکنید هیچگاه آنچه را که باید ببینید نخواهید دید حال که او از سه روحانی که دیدگاه ما را نسبت به بالا تحکیم میبخشد سخن گفت حالا او به تعلیم درباره ارزش روحانی می پردازن. او وقتی از ارزش حرف میزند بسیار سریح صحبت میکنه. پیش از هر چیز او به ما میگه که چگونه دریابیم یابیم ارزش ما چی هستند ؟ آیا ارزش های شما روحانی هستند ؟ آیا ارزش آسمانی هستند ؟ آیا ارزش کسی هستند که به بالا نگاه میکنه و یک دیدگاه منسجم و متداوم رو نسبت به آسمان حفظ میکنه؟ عیسی برای این که به ما نشون بده ارزش‌های ما چی هستند، سوالاتی رو از این قبیل مطرح می‌کنه. در طول روز چیکار می‌کنید؟ نظراتتون در طول روز به چه چیزی فکر می‌کنید؟ در طول روز به چه خدمتی مشغول هستید؟ در طول روز نگران چه هستی؟ در طول روز چه چیزی می‌خواهید؟ عیسی میگوید اگر می‌خواهید که درباره ارزش‌های خود بدونید، بیایید در مورد فعالیت‌های روزانه‌تون صحبت کنیم. بیایید ببینیم که پول خودتون رو در طول پنج سال گذشته چگونه خرج کرده اید یا در سررسیدهای قدیمی خود در پنج سال گذشته نگاهی بندازید و ببینید چی کار با زمان و انرژی و پول خود چیزهایی که زندگیتان را میسازد چی کار کرده اید بعد بیایید دوباره به دیدگاه خود فکر کنید دید شما چیه نگرش شما چیه اطراف را چگونه می بینید؟ این مهمترین قسمت زندگی یک شخص بیایید در مورد طرفداران شما صحبت کنیم. در طول روز چه کسی یا چه چیزی رو خدمت می کنید؟ بیایید به نگرانی های خود فکر کنید. ایسا آیات زیادی رو در اینجا به این موضوع می میده. او میگه در طول روز نگران چه چیزی هستید. نگرانی های خودتان رو به من نشون بدید. نگران چی هستید و من به شما خواهم گفت در شما چه میگذره. من در مورد ارزش هایتان به شما خواهم گفت. زیرا اگر زمان، انرژی و احساسات زیادی رو صرف نگرانی کنید پس چیزهایی که نگرانشون هستید باید قسمت مهمی از ارزش‌های شما رو شکل بدن. عیسی سوالاتی رو درباره های ما مطرح می‌کنه. در پایان این تعلیم زیبا، عیسی درباره انگیزه‌های ما صحبت می‌کنه یا اینکه در طول روز چه می‌کنیم؟ به دنبال چه هستید؟ چه می‌خواهید؟ این روشیه که عیسی گفتگوی خود رو این دیدار با بعضی از رسولان آغاز می کنه. اولین باب از یوحنا را به یاد بیارید، این رو به ما میگه. عیسی از یک جاده خاکی در سرزمین مقدس عبور می کرد. یحیای تعمیددهنده به او اشاره کرد و گفت: اینک بره‌ی خدا که گناه جهان را دارد. یحیای تعمیددهنده به شاگردان خود گفت که از عیسی پیروی کنید. و در حالی که بعضی ها به دنبال او می‌رفتند، عیسی رو به آنها کرد و گفت: به دنبال چه هستید؟ چه می‌خواهید اینها سوالات بسیار مهمی هستند آیات کلام خدا به ما میگویند که خدا مسئلت دل ما را به ما عطا میکند شما این وعده رو در مزامور 32 میتونید ببینید این یک وعده است یک تسلیه اما از سوی دیگه یک چالش بزرگه چون این سوال رو مطرح میکنه خواسته های دل ما چیه ببینید خدا ما را مخلوقات آزادی خلق کرده و ما میتونیم راه خودمون رو انتخاب کنیم می تونیم رو که می‌خوایم انتخاب کنیم آیا می‌خواهید بی‌بند و بار باشید یا می‌خواهید اخلاق یک بز یا یک گربه رو داشته باشید آیا می‌خواهید شبیه به یک حیوان باشید انتخاب با شماست اگر بخواهید میتوانید باشید اما باید با عواقب اون زندگی کنید اما اگر بخواهید میتونید این گونه زندگی کنید این سوالی بسیار عمیقه چه می‌خواهید و عیسی وقتی از ارزش‌ها صحبت میکنه این سوال رو مطرح میکنه بسیاری از افراد عادت دارند آیه برای زندگی خود داشته باشند. اگه من بخوام آیه برای زندگی خودم داشته باشم این آیه از متا هست. متا 633 اما ابتدا ملکوت خدا و ادالت خدا را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. برای من و همسرم این آیه زندگی ماست. راستش رو بخواید هیچگاه اون نمیذاره ما شکست بخوریم. روشی که ما این آیه رو تفسیر و تعبیر می‌کنیم اینه اگر ایمان داریم که کاری که می‌خوایم انجام بدیم اراده خداست اگر خدا پادشاه ماست او به خاطر حاکمیتی که بر زندگی ما داره به ما اجازه میده که بدونیم این اون چیزیه که او می‌خواد ما انجام بدیم به قول یکی از دوستان هر جا او ما رو هدایت کنه حمایت هم می‌کنه هر جا منو هدایت کنه به دنبال او میرم هر خوراکی هم به من بده اون رو خواهم خورد وقتی شما رو هدایت می کنه، چه حمایتی از شما می کنه؟ اون نیازهای شما رو برابرده خواهد ساخت ما سالهاست که به این آیه اعتماد کردیم و اون آیه هیچگاه گاه که ما شکست بخوریم. وقتی تعالیم خداوند عیسی را درباره ارزشها بررسی می کنید، به نظر می رسه می خواد در نهایت به همین نتیجه ختم بشه. اول باید نقطه ای برای اولویت در اهداف ما باشه. خدا اول پادشاهی او اول، چیزی که خدا به ما میگه و سپس خدا برای تمام چیزهایی که ما نگرانش هستیم خدا اطمینان میده که ما همه اونها رو خواهیم داشت. اینجا باز هم همون وعده ای رو دارید که برای تعلیم در مورد انضباط دعا کردن داشتید. در آیه 33 از متی باب 6 عیسی میگه که امتها افراد غیر روحانی، افراد دنیوی که در آن روزها آنها را امتها یا غیر یهود مینامیدند، چون تمام مخاطبین عیسی یهودی بودند و غیر یهودیان رو افرادی دنیوی میدونستند افرادی غیر روحانی. ایسا اینجا چیزی رو می بینه. او گفت که عمت هم به دنبال همین چیزهایی هستند که شما بسیار نگرانش هستید و بعد او میگه پدر آسمانی شما میداند که شما به اینها نیاز دارید. من خواهری دارم که مثل مادر روحانی منه. چون زمانی که من بچه دبیرستانی بودم او و همسرش منو با ایمان مسیحی آشنا کردند. او برای سالها به نوعی معلم روحانی من بود شوهرش ده ساله که پیش خداونده با این حال مشورت و راهنمایی های زیادی از او می گیرم هر وقت که مشکلم رو براش تعریف می کنم، چیزی که دائما به من میگه اینه. خود خداوند میدونه به او می گفتم که فرزندم در کالج درس میخونه و باید برای شهریه ترم بعدی او پول پرداخت کنیم اما پولی نداریم او می گفت خدا می دونه. پس از اینکه صد بار این جمله رو به من گفت من گفتم خب خیلی خوبه این چه برکتی داره خب خداوند میدونه خب چه چی او گفت اگر بدانی که خدا چقدر قدرت داره گله‌های هزاران مرتبه از آن او هست او همه چیز رو در این دنیا در کنترل خود داره او همه رو دوست داره میدونیم که او ما رو دوست داره میدونیم که نیازهای ما رو برآورده خواهد ساخت پس ما فقط میدونیم که او میدونه چون اگر او درباره مشکلات ما میدونه پس کاری هم برای اون خواهد کرد او تمام زندگی خودش رو اینطوری زندگی کرده و حتی بیشتر از من هم زندگی کرده نمیدونم شما هم چنین ایمانی به خدا دارید یا نه آیا میدونید که خدا چقدر مهربانه میدونید که او قدرتمنده شما به اندازه کافی درباره نامهای خدا که بیانگر ذات و هویت و ماهیت او هستند میدونید آیا ایمان کافی به شخصیت و ذات خدا دارید اینکه تنها چیزی که باید بدونید اینه که او مشکلات شما رو میدونه خب این همون تعلیمیه که عیسی در آیه 32 میده پدر شما نیازهای شما رو میدونه در قسمت دوم این تعلیم درباره ارزشها در متا باب شش توجه کنید که عیسی چند سوال پرسیده باز هم میخوایم این بررسی رو انجام بدیم که عیسی چقدر سوال پرسیده وقتی عیسی سوالی میپرسه وقتی خدا سوال میکنه سوالات اینطوری هستند کجا هستی؟ چه کسی به تو گفت از کجا آمد به کجا می روی؟ خدا به این دلیل سوال نمیکنه و ایسا سوال نمیکنه که اونها خود پاسخ این سوالات رو نمیدونن و یا اطلاعی ندارن. وقتی خدا از انسان سوال میپرسید وقتی ایسا این سوالات رو از افراد بالای کوه می پرسید، دلیلش دلیلشین نبود که بخواد اطلاعاتی به دست بیاره و یا اینکه پاسخ سوالات رو نمیدونست او میخواست که اونها رو به فکر واداره تا مطالبی رو بفهمند تا کارهای مشخصی انجام بدن و به وضعیت مشخصی تبدیل بشن و باعث بشه که اونها به این مسیرهای درست نگاه کنن او از اونها میپرسید به سوالات این قسمت از متابا بهش گوش کنید؟ مرغان هوا را نظر کنید که نه میکارند و نه میدروند نه در انبار زخیره میکنند و پدر آسمانی شما آنها را می‌پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ ارزش شما چیست؟ آیا شما نسبت به گنجشکان در نظر خدا ارزش بیشتری ندارید؟ و بعد، و کیست از شما که به تفکر بتواند زرایی بر قامت خود فساید؟ و یا کیست از شما که با نگرانی بتواند یک ساعت به زندگی خود بیافساید؟ وقتی به موضوع نگرانی می‌رسیم، باید این سوال رو از خود بپرسیم با نگرانی چه چیزی حل میشه؟ کتاب مقدس به ما نمیگه که کاملاً بیتفاوت باشیم و هیچگاه درباره چیزی جدی فکر نکنیم مزمور 127 به ما میگه که میشه بیهوده نگران بود دقدقه بیخودی داشت میشه بیهوده ساخت زیرا ممکنه که به اشتباه نگران باشیم یا کار کنیم و یا بسازیم اما همین مزمور عالی به ما میگه که میتوان برای منفعتی عالی نگران بود و کار کرد و ساخت زیرا میتوان درباره مسائل درست نگران بود و همچنین میتوان برای مسائل درست کار کرد و با نیروی حیات خود چیزهای درست رو ساخت عیسی در اینجا به ما تعلیم نمیده هیچگاه در مورد چیزی جدی نباشیم و به اون فکر نکنیم او میپرسه چرا نگران چیزهایی هستید که بر آنها هیچ تسلطی ندارید به گفته یکی از دوستان شما نمیتونید روزهای بارانی و یا هوای بد رو کنترل کنید اما میتونید جو احساسات خودتون رو کنترل کنید شما نمیتونید کنترل کنید که سرتون 360 درجه بچرخه اما میتونید محتویات اون رو کنترل کنید پس از اینکه که مطالب زیادی در این باره میگه شعر کوچک ما اینگونه به پایان میرسه چرا نگران چیزهایی هستید که بر آنها تسلطی ندارید خودتان را با چیزهایی که نمی توانید کنترل کنید مشغول نسازی میبینید که چیزهایی هستند که باید نگرانشون باشیم. اما احمقانه است که نگران چیزهایی باشیم که بر اونها هیچ تسلطی نداریم. هیچ راه حلی برای اونها ندارید. نگران بودن چه سودی داره؟ نگرانی اون نیرویی رو که شما میتونید صرف چیزهایی کنید که بر اونها تسلط دارید از بین میبره. اما این سوال خوبیه. چرا نگران چیزهایی هستید که بر اونها تسلط ندارید؟ بعد او در آیه 28 این سوال رو میپرسه. چرا نگران لباس خود هستید؟ چرا انقدر به لباس پوشیدن اهمیت میدید؟ و بالاخره این سوال رو میپرسه: آیا ارزش زندگی بیشتر از قضا و ارزش بدن بیشتر از لباس نیست؟ به اون فکر کنید. بدن شما چیه؟ چیزیه که باید هر روز لباس بپوشه؟ بدن شما هیکل خداست. چیزی که باید نگران اون باشید اینه که عدالت مسیح رو بپوشید. صفاتی رو که روح القدس میتونه در زندگی شما به وجود بیاره بپوشید که کتاب مقدس اون رو میبه های روح میگه. ما میتونیم اعمال خوب رو بتنکنیم. از نظر روحانی چیزهای زیادی وجود دارن که میتونیم بپوشیم. اگر تنها بدن خود رو یک بود جسمانی تلقی کنیم و تمام هم مقم ما این باشه که چگونه بدن جسمانی ما خوب به نظر برسه بدون اینکه با ثمرات روح و صفاتی که از زندگی با خدا به وجود میاد این بشه از ارزشهای ما با هم جور در نمیاد این چیزیه که عیسی تعلیم میده یعقوب این سوال رو در باب چهار میپرسه زندگی شما چیه این سوال عمیقه به نظر عیسی در متی باب شش در حالی که او ارزش ها رو تعلیم میده میخواد این رو بگه بیایید در مورد هایتان فکر کنیم. به نظر من عیسی میپرسه و یا به طور تلویحی میگه یا حداقل 20 سوال در این قسمت از متا باب شش آیه 19 تا 24 که همه در مورد ارزش‌ها هستند. عیسی این سوالات رو پرسید چون او از ما میخواد که فکر کنیم. فکر کنیم که ارزش‌های ما چی هستند و چگونه ارزش‌های خودمون رو تشخیص میدیم. وقتی که این سوالات بر ارزش ما تاکید می کنن، بعد تعلیم بزرگی هست که به این سوالات پاسخ میده آنجا ایسا میخواد ما متوجه بشیم به عنوان نتیجه تفکر درباره تمام این سوالات مطالبی مثل این هست گنج من باید ابعاد روحانی در جای‌های آسمانی رو دربر بر بگیره چیزهایی که میاند باید چیزهایی باشه که هیچگاه از من گرفته نشه و هیچگاه از من گرفته نخواهد شد. اونها باید چیزهایی باشند که هیچگاه از ارزش نیفتد. قلب من جاییه که گنج من اونجاست. و از من انتظار میره که قلب خود رو در کلاف زندگی با خدا بپیچم. قلب من باید در گروه کارهایی که به خدا مربوط میشه باشه. نه مسائل این دنیا. این یک بررسی دقیق از ارزشهاست. بذارید چیز دیگری رو به این تعلیم سریح در مورد ارزشها اضافه کنم در فصل سوم از انجیل یوحنا عیسی تمام شب رو با نیقودیموس بیدار موند و در اونجا بود که گفت باید از نو مولود گردید عجب مدار که به تو گفتم باید از سر نو مولود گردید تعجب نکن که این کار غیر ممکنه تعجب نکن که این کار غیر ضروریه تعجب نکن که این کار غیر قابل فهمه باید از نو متولد بشی عیسی در مورد اون تعلیم عالی در چارچوب این صحبت گفت که تولد تازه فی نفسه یک هدف نیست بلکه وسیله برای هدف هست او گفت که باید دوباره متولد بشی چون تا زمانی که دوباره متولد نشی نمیتونی پادشاهی خدا رو ببینی و تا زمانی که از نو متولد نشی هیچ وقت وارد پادشاهی خدا نمیشی پادشاهی خدا همان گونه که در دعای شاگردان دیدیم صرفا به این معناست که خدا پادشاهه و اگر اجازه بدیم که او بر قلبهای ما سلطنت کنه، پس ما در این پادشاهی مطیعان او هستیم. پس این یک حقیقت بزرگ، رهبری و پادشاهی خدا. خدا شاه شاهان و رب العربابه. رو کپوسکنده بگم، خدا نیکو هست. هر چیزی غیر از این باشه، مفهومی نخواهد داشت. اگر خدا نیکوست، پس کامل هم هست. و اگر خدا کامل هست، تنها مفهومش این خواهد بود که خدایی داریم که میگوید باید اول باشه. من باید پادشاه باشم. اگر من تنها خدا هستم، من مطلقا خدا هستم. اما عیسی به نیقودیموس گفت، نیقودیموس، مردم باید دوباره متولد بشن. تو باید دوباره متولد بشی، چون تا زمانی که دوباره متولد نشی، این حقیقت که خدا پادشاه است را متوجه نخواهی شد. و هرگز وارد یک ارتباط با خدا، که او در اون پادشاه شما باشه نخواهید شد تا زمانی که از نو متولد نشید وارد پادشاهی آسمان نخواهید شد پس وقتی افراد از نو متولد میشن این اولین چیزیه که خواهند دید اولین چیزیه که وارد اون خواهند شد اونها خداوند رو خواهند دید او خداست او پادشاه و اونها وارد یک ارتباط با اون میشند که در آن او خدا و پادشاه است در اینجا در این قسمت عالی از کتاب مقدس جایی که ایسا درباره ارزش ها به ما تعلیم میده سوالات بسیاری مطرح میکنه که ما رو مجاب میکنه که ببینیم ارزش های زندگی ما چی هستند؟ اگر با صداقت خود رو تفتیش کنید و بعد به قسمت دوم مطبا به شش در مورد ارزش ها برسید بعد این سوال رو پاسخ بدید. ارزش های یک مرد یا زنی که حقیقتا به بالا نگاه میکنه و دیدگاهی منسجم و منضبط در این راستا حفظ میکنه چی هستند؟ عیسی در آیه 33 به این نتیجه میرسه ارزش اولتون این باشه پادشاهی خدا ادالت خدا خواهید دید که خدا باید پادشاه شما باشه و شما وارد ارتباطی عظیم با او خواهید شد که در آن او پادشاه شماست و او هر روز میدونه که چه چیزی برای شما لازمه شما به عنوان مطیعان وفادار او از او اطاعت میکنید این باید مرکز نظام ارزش های هر شخصی باشه که به بالا نگاه میکنه و با فیض خدا ارزشهای روحانی و آسمانی رو در زندگی خود داره بذارید سوالی از شما بپرسم اگر در حالی که ارزشهای شما در کتاب مقدس مطرح میشن و اگر خودتون اقرار میکنید که هیچگاه ندیدید که خدا پادشاه باشه و او میخواد پادشاه شما باشه اگر خودتون قبول دارید در حالی که او پادشاه هست و شما زیر دست او هستید اما هنوز وارد ارتباط با او نشده اید؟ پس آیا این حق رو دارید که بگویید من تولد تازه دارم؟ تولد تازه چیه و شواهد یک تولد تازه چیه؟ بر طبق اون چه ایسا در باب سه گفته وقتی با نیقودیمو صحبت میکرد، شواهد تولد تازه اولین سمره تولد تازه این خواهد بود که ما خواهیم دید که وارد پادشاهی خدا میشیم در اینجا در متا باب شش عیسی به ما میگه. وقتی در مقام یکی از شاگردان من به بالا نگاه می‌کنید نه تنها انضباط روحانی بلکه ارزش‌های روحانی نیز دارید اینها ارزش‌هایی هستند که شما خواهید داشت اگر شما شاگرد تولد تازه یافته ی حقیقی من باشید او می پرسید اگر می‌خواهید بدانید که ارزش‌های شما چه هستند نگاه کنید و ببینید تمام روز چه مخارجی می‌کنید لیست مخارج پنج سال گذشته خودتون رو به من نشون بدید، سررسید های پنج سال گذشته خودتون رو به من نشون بدید، به من بگید که چگونه وقت و نیرو و استعداد و پول خودتون رو صرف کرده اید و من به شما خواهم گفت که ارزش زندگی شما چیه؟ به عبارت دیگه سوال در آیه 19، 20 و 21 اینه، فعالیت های شما چیه و آیا اینها نماینگر ارزش های شما هستند؟ بعد باز هم سوالی که همکتون درباره دیدگاه شما پرسیدن مطرح میشه اینها نحوه دیدگاه شما به اطراف هستند این همون چیزیه که تفاوت میان بدنی رو که پر از نور با بدنی که پر از تاریکیه نشون میده این رو میتوان در آیات 22 و 23 دید پس اگر میخواهید بدانید که ارزش های شما چه هستند بذارید این سوال رو از شما بپرسم دیدگاه های شما چی هستند آیه 24 در مورد وفاداری صحبت میکنه شما تنها می تونید یه داشته باشید و با این اصاف نمی تونید هم بنده خدا باشید و هم بنده پول یا بنده خدا و بنده هر چیز دیگه اگر کاملا به خدا وفادار هستید پس باید تنها به خدا وفادار باشید اگر خداوند شبان شماست پس هیچ کس دیگه نمی تونه شبان شما باشه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه وفاداری شما به چه چیزهایی هست؟ قسمت اعظم این عبارت در مورد نگرانیهای ما صحبت میکنه. نگرانیهای شما چیه؟ در تمام طول روز نگران چی هستید؟ اگر درباره نگرانیهای خودتون با من صحبت کنید، خواهید دید که تمام چیزهایی رو که براتون با ارزشه به من خواهید گفت. چیزهایی که واقعا برای شما اهمیت دارند. بعد این سوال درباره انگیزه ها مطرح شد. انگیزههای شما چی هستند؟ در طول روز چیکار کنید و کلام به ما گفت که باید خواهان چه چیز باشیم ما باید اول از همه چیز پادشاهی و ادالت خدا رو بطلبیم و بعد تمام چیزهایی که نگرانشون هستیم به ما داده خواهد شد اینها سوالات هستند اما علاوه بر این سوالات سوالات دیگری در آیات 19 تا 20 به طور تلویحی بیان شدن جایی که این سوال مطرح میشه گنج های شما کجا هستند آیا آنها روی زمین هستند یا ابعاد روحانی دارند. چه اینجا و چه در آسمان نه تنها در زندگی بعدی بلکه حتی در این زندگی ینج شما یا ابعاد روحانی زندگی کنونی و زندگی پس از مرگ رو در بر گیرند. و سپس آیه 21 این سوال رو مطرح میکنه. دل شما کجاست ؟ قرار بود قلب شما به خدا تقدیم بشه ما باید با تمام دل خود خدا رو دوست می داشتیم در کتاب سائیل، توصیفی از این موضوع هست اول سمویل 25-29 که بسیار زیبا هست میگه دل شما باید اینجا باشه در دسته حیات نزد یهوه و خدا اینجا و تا به عبد. بعد این سوال در رأس این دیدگاه ها بیان شده آیا چشمان شما خوب کار می کنند؟ اطراف رو چگونه میبینید؟ آیا دیدگاه شما همان طرز فکر شماست؟ آیا فیلتری هست که نگاه هایتان را انطور که باید باشه تبدیل می کنه؟ چون اگر این قسمت ناقص باشه بدن شما در تاریکی مطلق فرو خواهد رفت آیا بدن شما پر از نوره یا پر از تاریکی؟ به عبارت دیگه آیا واقعاً از ته دل خوشحال هستید؟ آیا زندگی شما پر از برکته؟ جان کلام تا حدی حد این هست مقصود این نیست که زندگی مسیحی بر خوشبختی استواره اما خوشبختی واقعی یکی از پیامت هاست اگر ما به طور صحیح با عیسی مسیح و خدا ارتباط یافته باشیم اگر واقعا تولد تازه داشته باشیم اگر شاگرد پادشاهی باشیم پس یکی از شواهد اثبات اون خوشبختی هست که بر شرایط زندگی استوار نیست افرادی که رنج میکشند، کسانی که در اردوگاه های کار اجباری کار میکنند، کنند کسانی که در زندان ها هستند کسانی که از دره های جرف و تاریک عبور می کنند افرادی که در زندگیشان شان های فراوانی دارند در بهبهه تمام اون شرایط سخت هنوز میتونند شاد باشند نور داشته باشند خوشبختی داشته باشند میتونند بدنی پر از نور داشته باشند در حالی که در نظر شما دلیلی برای این شادی نیست و سوالاتی که به طور تلویحی گفته میشه اینها هستند بینش روحانی شما چگونه است آیا بدن شما پر از نور یا پر از تاریکی؟ آیا زندگی خوشبختی دارید یا نه؟ بعد به طولانی ترین قسمت باب می رسیم جایی که میگه نگران زندگی خود نباشید. اینکه چه بخورید یا چه بنوشید یا بدن خود که چه بپوشید. بعد میگه که نباید سوالاتی از این قبیل بپرسید. چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ یا چه بپوشیم؟ به عبارت عیسی در واقع این سوال رو میپرسه. چرا سوال اشتباه می‌پرسی چرا سوالاتی که ملکه ذهن و قلب و زندگی شما شده سوالاتی است که نباید شاگرد واقعی عیسی مسیح بپرسه او در پایان این قسمت به ما یادآوری میکنه که امتها هم به دنبال چنین چیزهایی هستند بی ایمانان میگوین بخور بنوش ازدواج کن چون که ممکنه فردا بمیرید. پس امتها افراد دنیوی افراد روحانی کسانی هستند که دائمان این سوالات رو میپرسن چه بخورم چه بنوشم و چه بپوشم اما دغدغه شاگرد عیسی باید اراده خدا و هدف مسیح در این دنیا باشه اینکه راه حل باشه یا پاسخی برای مشکلات این دنیا باشه به عنوان مثال آنها باید رساندن انجیل به اقصای زمین رو دغدغه فکری خود قرار بدن اونها باید به این گونه مسائل فکر کنن که دغدغه فکر اونها نباید حول مسائلی از این قبیل به چرخه چه بخورم چه بنوشم چه بپوشم عیسی این سوال رو مطرح میکنه آیا میدانستید که پدر شما همه این چیزها را میداند و بعد میپرسه آیا به پرندگان آسمان فکر کرده اید آیا تا به حال فکر کرده اید که آنها نمیکارند و نه چیزی رو در انبار ذخیره میکنند اما با این حال خدا به آنها خوراک میده چگونه این ارزش ها را انتقال میدید آیا این کار تنها با سخنرانی درباره ارزشها و یا صحبت کردن درباره اونها امکان پذیر هست؟ نه، تنها با حرف زدن نیست چون ارزش ها را نمیتوان با حرف تعلیم داد. ارزش ها را با الگو انتقال میدید. همانگونه که فرزندان شما به سخنان شما در مورد ارزش ها گوش نمی بلکه فقط ارزش هایی رو که شما بر اساس روش زندگی خودتون در خود بروز میدید الگو بر باید همچون نمک از نمکدان خود بیرون بیاییم و در جایی که مردم هستند بیرون بریزیم و در میان آنها زندگی کنیم بعد با فیض خدا میشه این ارزش ها رو به مردم این دنیا انتقال داد دوستان صادقانه بگین اولویت های شما چی هستن؟ وقتی صبح از خواب بیدار میشین یا به هفته و ماه و سال آینده فکر میکنین معیار ارزشی شما چیه ما اینجا در دانشکتی کوچک کتاب مقدس اینه که این درس ها به شما کمک کنن تا در ایمان و تعهدتون ورزش های ایسا رشد کنید و اگر قبلا این کار نکردین از امروز شروع کنین گنجینی خودتون رو در آسمان پسنداز کنین. کنید. اینه که شما متعهد تر باشین و شاگرد وفاداری برای خدا باشین و برای استفاده شدن توسط اون آماده باشین تا برکتی